برلین شرقی، آلمان شرقی، 18 دسامبر 1963. تمرین ارکستر مثل همیشه راس ساعت سه عصر تمام شد. هیلدا با عجله ویولون و آرشه آن را داخل کیفش گذاشت. همیشه تمرین‌های موسیقی یوهان باخ در این مکان برگزار می‌شد. یوهان باخ افتخار دولت آلمان شرقی محسوب می‌شد، زیرا محل تولدش در آنجا بود. کسی این موضوع را در نظر نمی‌گرفت. که تولد و مرگ او قبل از تقسیم شدن آلمان به شرقی و غربی اتفاق افتاده بود. آنها او را یکی از شهروندان مورد احترام خود میدانستند قبل از اینکه کیفش را ببندد، نگاهی دق... دقیق به سازش انداخت. ویولون محبوبش را به یاد آورد که آن روز در خانه جا گذاشته بود. همان روز که از غرب به شرق آمده بود. افراد معدودی این مسیر را انتخاب کرده بودند و او یکی از آنها بود. اکثر مردم آرزو می‌کردند کاش از شرق به غرب رفته بودند. ویولونی را که سپ برایش خریده بود در کیف گذاشت و با قدم های سریع به طرف مهد کودک گریتا به راه افتاد. همین که به مهد رسید دخترکش را دید که در میان همسن و سالانش مشغول بازی بود. به سرعت به طرفش دوید. میخواست از پشت سرش او را در آغوش بگیرد و غافل گیرش کند. عطر دلانگیز دلنگ... موی گریتا به مشامش رسید. کودک متوجه هیلدا شد و خود را محکم به آغوش او انداخت. هیلدا ناگهان متوجه شد کودکی که به سمتش دویده بود تا او را در آغوش بگیرد دختر خودش نیست. دلش گرفت. احساس کرد قلبش فشارده می شود. نمیدانست کدام یک دلگیر تر است. این که لباس یک شکل و حتی شامپوی یکسانی که همه بچه‌ها استفاده می کنند، او را به گونه‌ای به اشتباه انداخته بود که نتوانست دختر خود را بشه ناسد یا اینکه که دخترکی به سن و سال دخترش تا این حد مشتاق آغوش زن غریبه بود پس مادر این کودک کجا بود؟ هیلدا خ... کودک را از خود جدا کرد و دستی روی سرش کشید و نوازشش کرد افکار مختلفی به مغزش حجوم می آورد و او را می ترسند گریتا شادمان به طرف مادرش دوید های هیلدا میان دو کودک حرکت می کرد از خودش می پرسید آیا این زندگی بهترین چیزی بود که می توانست به دخترش بدهد یا اینکه او دخترش را از فرصت زندگی بهتر در بخش غربی کشور محروم کرده بود. از وقتی با سپ ازدواج کرده بود یا به عبارت بهتر از وقتی دخترش به دنیا آمده بود، هیلدا بارها و بارها تلاش می کرد همسرش را راضی کند که به غرب بروند هیچ وقت از این کار خسته نمی شد مثل موش فرار کنم، هرچی که دوست دارم و هرچی که بهش اعتقاد قلبی دارم پشت سرم بندازم و رها کنم به جایی برم که در تمام زندگیم برزه دو جنگیدم تو راضی میشه اگه من این کارو بکنم اصلا این جایی که ما هستیم چه ودی داره مگه ما چی کم داریم؟ دیگر نباید ادامه میداد نباید آنچه کم داشتند بر زوا می آورد و یا از وضعیت بدی که به آن دچار بودن حرفی میزد چون از قبل پاسخ همیشگی سپرا ما تازه اول راهیم. تو خوب میدونی نظام سرمایی چطور با ما جنگید تا ما رو تحت فشار قرار بده و ما رو از پا در بیاره. ما از دو طرف در جنگیم. یک دستمون باید بسازه و یک دستمون باید با دشمن به جنگ. یک طرف سازندگی داریم و یک طرف جنگ و عقبرش... عقبراندن دشمنان. اما هیلدا از غانه کردن اونو امید نمیشد. چون از عشق شدید و عارفانه ای او به خودش و گریتا خبر داشت می دانست که فقط زمان لازم دارد تا او بفهمد چه چیزی برای آن دو بهتر است و آن وقت است که دیوار مقاومتش در مقابل هیلدا فرو خواهد ریخت و تسلیم خواهد شد تنها نگرانی هیلدا این بود که فرصت عبور از شرق به غرب را از دست بدهند مخصوصاً بیشتر نگران سپ بود زیر خودش و دخترش به خاطر هویت آلمان غربی که هنوز آن را حفظ کرده بود مشکلی نداشتند، اما در مورد سپ باید برای فرارش راهی پیدا می کرد. سپ و دو تن از دوستانش در کافه مورد علاقهش نشسته بودند. آبجو جا میرمیشیدند و گفتگو می کردند. به عبارت بهتر او بود که سخن می گفت و آن دو گوش می دادند. گاهی یکی از آن دو سرش را به نشانه موافقت تکان می داد. و یا دیگریت ای در تعیید او بر زبان می آورد و تشویقش می کرد به صحبتش ادامه دهد. همانطور که عادتش بود با شور زیاد حرف میزد های گردنش برآمده و چهرش از شدت حیجان سرخ شده بود از دولت انتقاد میکرد به نظرش حکومت به اندازه کافی ارق کمونیستی نداشت برنامههای اقتصادی که اولبریخت دبیر کل حزب کمونیست اعلام کرد رو دیدین به نظرتون این جهتگیریهاش اصلا عاقلانه است به نظر شما اینها باعث تضعیف حکومت مرکزی نمیشه، اصلا معقول هست که سیاستمدارها به چنین روش های اقبان نشون میدن دومد با نگاه های حیران و با چشمان از هدقه درآمده به او خیره شدند. سبپ دلیل نگرانی آنها را دریافت صدایش را پایین آورد و ادامه داد؟ بعدش هم، اصلا این اطاعت کورکران از مسکو دیگه چیه؟ اونها درک نمی کند. که در طول تاریخ همیشه ما در صفحه اول بودیم و بعد لبخندی زد و مهمترین بخش حرفش رو گفت اول همیشه یادش میره که کارل مارکس آلمانی بوده این ما بودیم که از اول کمونیست بودیم نه روسیه سپ وقتی دید دوستانش آرامش خود را از دست دادن سعی کرد از ناراحتی آنها کم کند آرام زمزمه کرد آخرین نکته رو بهتون بگم دبیر کل حزب ساعت طلایی گران قیمتش رو گم کرد و فوراً یه درخواست رسیدگی برای پلیس فرستاد چند دقیقه بیشتر نگذشت که اون رو زیر بالشت خودش پیدا کرد دوباره به پلیس تماس گرفت میخواست اون دادخواستش رو پس بگیره که بهش خبر دادن دیگه برای پس گرفتن شکایت دیر شده چون اونها سه نفر رو دستگیر کردند و هر سه اونها هم به طور کامل به جرم خودشون اعتراف نمی دانست چرا دوستانش بعد از این حرف با او قهقه نزدند و نخندیدند. به نظر می رسید، یکی از آنها سعی می کرد لبخندش را پنهان کند. دیگری نیز خطوط صورتش کاملا ثابت مانده بود. لطیفهی که تعریف کرده بود حرف پایانی آن دیدارشان بود. در سکوت از دوستانش جدا شد. بعد از خوردن شام هیلدا گریتا را برای خواب آماده کرد. شوهرش گوشهی نشسته بود و مجله می خاند. بعد از اینکه بچه خوابید هیلدا به حمام رفت تا یک دوش آب گرم بگیرد بعد از همام احساس سبکی میکرد حس خوبی داشت موهای تلاییش را شانه میزد و در همان حال زیر لب آواز میخواد. خود را در آینه نگریست از آن اندام کشیده و لاغرش اثری نبود بعد از بارداری و وضع هم، هیکلش کمی به هم ریخته بود آن وقت شب حوض کرد آهنگی بنوازد ویولونش را از کیف درآورد چند ضربه آهسته بآن زد. بعد ساز را بلند کرد و زیر چانه‌اش برد و به کتفهایش تکیه داد. آهنگ ملایه می شروع کرد. این مشهور را انتخاب کرد که در آن آهنگ ویولون او با نوای ساکسیفون سپ ترکیب زیبایی میساخت. سپ هم به آهنگ او جواب داد و شروع به نواختن کرد. ناگهان صدای بلند آنها را به خود آورد. چند نفر با خشونت به در آپارتمان می‌کوبیدند. هیلدا و سپ با عجله از جا بلند شدند، لباس پوشیدند و فوراً به طرف در رفتند. هنوز به در نرسیده خود را در محاصره مردان یافتند که گویی از ششمانشان آتش میبارید. ما از طرف اشتازی اومدیم، باید با ما بیایید. اول سپ را گرفتند و او را جلو انداختند. بعد هم دست هیلدا را بستند و وادارش کردند به راه بیافتند. نگاه هیلدا به یکی از آن مردان افتاد، که گریتا را رو روی دستش گرفته بود. کودک با صدای بلند گریه میکرد در خواب بود که او را از رخت خوابش بلند کرده بودند. معلوم بود از روبایندگانش حسابی ترسیده است. هیلدا نومیدانه تلاش میکرد خود را از دست مردان آزاد کند و به طرف دخترش برود. همین کارش باعث می شد آنها توجه به شیون و گرریهایش با شدت بیشتری او را به طرف پله ها هل بدهند. در راه پله ساختمان، همسایه هایشان را میدید که یکی یکی درهای آپارتمان خود را باز می کنند تا ببینند چه خبر شده و علت آن همه حیاهو است و با, با دیدن آن وزن برافاصله در را میبستند و قفل می کردن.